یکرانی خوشویست شیدانی دنیای پرزانستی کتیب سلاوتن لیبه خوشحالین لابشی هشتاو نوی خویند نوی کتیبی چشتی مجیوری هشاری مکریانی حتی نوالاتن فرمون لگل بن؟ اجار مکریانی دو به دوای او همو با سو خواسی بو اجراینوا و وچانیک بدمو باسیکی گشتی گشتي بکم او چن ساله من خوم دهات مشورش چون کله شورش بنا شکر ناله مدرسو خوندنه بو دمغوت با من دالکنم لخوندن به بشنه بن و تا ریس یکم دکرد مصطفیم غیبو ششو دبو دبلوم بستنی زور زیرکی کیبلی مطبو همو سال لمدرسه مدرسه دا یکم بو زاگروسم غیبو ایشم هرزور حلقه وتبو خانی چکولش د بوی بچت چورمی ابتدای هیڅ گاش دولت تشقله تنه هلنده بون بعسی ل سال 1972 ویکوتن نزیکی 40000 کوردی فیلی کسدها سال بول عراق دژیان به تومت ایراني بون درکرد که ها دگل ایمشی تیگ دایوه بو اوه مخاریز لسر برزانی زیاد بکاو اواری زور ببنه دست و پاگیر هرکس شبهه ان لیده کرد دگل شورش برزانیه به نیوشه ویک لبغداد دریان دکردن که لوانی حوالکاروان مالی منو صد مالی تربون. بون برادر که لبغداد جیرانم بو حاتبو نو برا تکات لیکم محمد ایمامی و جنکی بابتون خانوی منوه وادکم مال کم مالکم مکیو. توم از او برادره بو خوی بو تا پیاوی خوی پیه فروشتون. جنکشی جاسوسی سفارتی روسه چوبو باسی منی وردو درشت بو اداری امنی باس کرده بو. شویک ساعت دوی پش پیاوی امنی باسی رجابونه مالکم. لیلی همو جوړ کانو در کین ل بیا و بهالنجونو مندال جلکی خو بغورن یا جلکی حل گرن راپی چا کیاندہ بن معصوم هر اوندے فکرابو دیناری او ربع 25 تمن لسر تلویزیون دس بداتی اتر سواری کامیونن کردبون بردی بو یانه امن ل پرسیبون ایمانی وجنکی چین کدبو بینه مال لاوهه برده بو یانه در بغداد دغل چن مالی تر کبه و نودبون صد بس حرهه نه بو یانو لهوليره در چوبون لخور هاوینه هواري صلاح الدين د ين بزندبون هر کور کی تمنه له 12 سالو بالا تره له صفيان ده بون ک اعدام کن افسرک لو دمده گي بويه نه منالکن اعدام کن بلان بر هلد چيو چولان کړدبون ک بوکيو دچن بچن به پیه به نوشاخ و جنگل ده هاته بون کابره یک دو مندالکمی سوالی کر کرده بو گئی بونا سرمایو روتن جنالدهی جلکونی خواین دابو بجنن پیوان لجلکی شر خواین مندالین لسرما رزگار کرده بو لوی چوب چوبونه هیرانو نزنین با کامیون باریان کرده بون با رانیو لمال امام قادری باغوان شویک مابونه و توزیک پشت کرابونه و راست با کم پی اواران لنغدا لخیوه تک دا جه کرابونه و با جیانی اواره جیابون من که او خبرانم زنی نردم با دزیوه مالو من دالکم حتنا حاجی اومران پی امویا یکم جربون معصوم دید با مال بگری زورم دلخوشی دایا و. خانی که هر دیت میوتی دابا زوري ان سواري کامیون کردین بخورایو هیڅ پولیشیالی نستاندین خوځګم بدل مندال کا جاب ځانم منکن زیکي سی سال زحمتم کېشاو اویش زحمتي فرهاد چملی سندرابو 8600 دینار عراقی، چواست مسخل زیرو خشلیجن، ش و تاغ مافوری ایرانی، کتابخانه خانکم کباور که قد به دیناری شمناده، او همو ساله کتیبی حلبجاردم و سر نابو. جگل عربی و فارسی و ترکی هر چی با کردی استانبول و عراق و سوریا چاب کرا بو هم بو. دو و بیست و هشت جلد هر شرف دست لیندرام هم هبو. دیاری و جایزه مقالات و او همو اکسیادگاریانو خلاصه با این زیکی 12 هزار دینار خانوی کی اسکان که تنیا قیستی سالی مابو، تلفزیون و چند راڈیو، فرگازی ایتالیو و جلشور و همو کلوپلی مالی تیار و سازی شرستانی، موبلی هرچاک، هموی لسعاتی که نیوشوده مسادره کرده. ځا چون جن یکه بخوونی دل شریکی پیداونی او همدار یب وو د گلګس کې کېش علاقه دل زوره لپاره ببین هاتو تو سر صفر د سبطالو نانی پنهاندی ایراني بخوا غمګی نابه بلم چرچیا دل جنیدی بغدادي واس ادا لوکه تدا سری کورکان بريبو لکولانه وخستیننه کوشش لوی داوتی او منجلی نابو د بوایه کلاکی عزیزی کیدا بوکله دا وکردنی ازادی کردستان ل منجلی جنید گرم تر بو دارایی من شیتیدا کولاو هله هلا بو بنه اهمیت نبین اگر ل ایران وهلاتم 506 من پیبو اگر مال من دالم بو هاتن 6 من هبو بلان دوکانی کی اکاسیم شکابر ل پاش دولمنبون 186 منکش شکنابین او کسب بو و سبب مال ویرانی من 4 سی گرت یا کرد جنکشی به گوه پچر گوه پچر خوی گینده و روسیا. رگی شعران نما هاتو چوکا که. روژگلو نخوشی گو کریم نستانی که پیشمرگی که ایرانی وزور عذابو لحاج امران پیدا بو. وطن کریم تو لکو یه ده جید؟ چونت ویره و بیو بگی ایره و بوچی هاتوی؟ گوتي من جارو بار قاچه خیتی ده کمو بکیر رگیان ده خوام لجاشو سرباز محمد مولود من بیز دیناری حق راگ دومتی کسی بیز دینار پول بوتو تو بینم زنیوی مالت همو دا جیر کراو استا با دستنگی لچیا لو پیاواتی که هیس تمحی دنیای تی دارچاو نکراو لو لی قومان سخت دا برادری کی دست کرد آوای دوستی خویل بیر نچو بیتوا گریانم هات جا چون نلم افرین مردیتی راست چون هزار دوستی زمان خوشو لکرداری پیاوان بدور با قربانی دوست کیوانکم خوات من پیدا کرد مراملا مصطفى دانویلو کلو پلیان بو نردینو جیان من و همون روز تیار من دهات سر معصوم لو اترسا من برکم که خوم نشارمه ناچاری ناچاریده کردم که حتا من خوم پناندم اویش خوی نشاریته سر ما هات بو مال من برده چومن لخانو یک داده شر امجاره زور بیا رحمانه تربو. همو روج همو اودانی بمباران د کړن روج نه بو چن لبر چاو ما من دیسان هر لسر رادیو کردی کارم د کړ جیان لچومان زور د بو د ترسام خان وکوم د لکان مو بر بمبای کون ناچار وتم سابلاو صاحب لاو میوانی سید عبد کلی جیبن اگر ویری راتانګری بمې نه و او رنګ بتوانی لگرتن رزگار تانکا بالام عبد الله برام هیڅ به نه کری لوانه خوشی توشی گیا چلی ساوک بید. براج یکی زور سار زستانی نردم نوا. چوبونمالی سید عبدالله چوب و سابلا گوتبوی هزار خزمی منا من دالی میوان من اگر را نگرم آبروم دا چیو دا بیلم شار برکم. گوتبویان هیچ قیدینی با میواند بن. طبقه دو همی خانوکی خوی به همو بیکو دا بونیو او پری پیواتی نواند بو. هشتان هرپایز بو برزانی لسفره که تران گرابوه و فرموی دگل شاه در باری تو دوام که چند سال دوستی منو هاوکاری کردومو دبیه ببخشری شا قولی داوا که پرواندکت نکویت کارو تا خرابه دگل ایران نکاو گناه دجی دولتی شاهنشاهی لیارونده باسی نکریو بابیتو ایران دیستا خود حاضر که بچوورمیو خود با سیادیان بناسیانه گوتم کاکا کاری رادیو میک جاز وره بروج ب قولو بلې نشانه کم هرگیز ناتسمه فرموي من قولم دا وکدګل خون بچیو ل رابردود نپرسنوا گوتم غوتم کاکا هرګه خود شو یو منج د غلط دیم بل مېستا خر بچ نمانگی بفرانباری سالی هزار و کم هفته نازانم کام بو برزانی دهاته تاران فرموی توش دگل خوم وره هنه میاورمی چاون با سیادیان کود کی کرماشانی بو که گوتی بله مراحنی ملوکان توی گر توتوا ایستاک تو آزادی گوتم باو شرط ساواک و ماواک لسابلاغ لیم نپرسن گوتی نا nah, خاطر جنبا هر ایستاک با ساواک بدبینن ایتر کست تازه باست ناکه دگل دو ساواکی نردیان مو محباد چوم اداره ساواک سرهنگ رشیدی نو رئیسی ساواکی محباد بو تلفونی لکولیجی کرد که وره کاریکی گرنگم پیت هیا که منی دیت گریه دگل یا حتم و مالو دویی واب زنم سی رش چوم و ورمی دگل ملا مصطفاو چندگ لحوالانی حتی نتارن لجگه یک دابزین که باشگه ساواکو جگه میوانی خ لو پر راجلاتی تاران، مالی جنرال نسیری سروکی بالای ساوگ لنزی که اوی بو. دو کسی ساوگ، یک بناوی امانی کبریکار نسیری بو، یکی تریش بناوی کیسا چی همیشه لامان بو، امانی پیاوی که سرو روخوش بو زوری مند دوان. راجک پرسیم، نسیری لپیش توحالات دادروا، خواه غذابی لگر توه کتیر نخوه، گوتي، نه اسیری بناو معاونی سروک وزیرا، بلام سروک وزیر هوی دا، لما تا نسیری نچه لاشا و دستوراتی کاری رو جانور نگریو بسرک وزیری نده. چا نسیری دا چه مالی شا. که خو خبری بواوا دستوراتی لیوردگریو دا, دا چه مالی حوی دا پیرادکه یعنی. کرمن هر خوارد نونوستن بو. جاریک بارزانیو دکتور محمود لای شا. خبرمن ورگرد که شاد دا چه تا جزایر. جنرال نسیری حتلای بارزانی و کمیشه زور قسی دانیشتو کرد. لپر حلی د یوتی شاه د گل صدام اجد بوتو لمرو به اول لشکری خمان د کیشینو یوش د به تسلیمی به اسبن اگر راکنو بین ایران پناتند دین د اگر هر شرط کن لی تند دینو یریدی به او پیغام شان شام پیراګند خوتن فکری لب کنو اما چندین قسیتریش ا دی امکوتینه خمی اوک بارزانی بتوانی لګرتن رزګاری به روش برایش خبردهات کدوار دوای پیش مرگزانی و نه ایران دستیلی بر دعو نمیاریده ندا، که اونها شرکرندی که هرگز ندید روا. با گشتی روت حجم دکانو عربان قردکن. به برزانی من پیش نیار کرد که تلگراف لمس عدو ادريس سوابیت با منایا پیش مرگه هیچی با خصیه مناکن تا برزانی خوی نیت روا. نداست لشر حال دقن، نواج دکن لشکری ایرانی بتو سریا نبیکلاوب می تلگرافه کاری خوی کرد، ایرانی گوتیان بارزانی زوب گات و پیشمرگ رازی که دست لشر بردن، لنو خودا هر لطارن قرار ودره که هر برزنی بارزانی گیشت و دیوی عراق دس لشر جبههی برده و مل لشر چریکی بناتوا. بارزانی نگیره و حتی نو ورمی، لوی و سریکی مالوام دایوا وسیعت یک جاریم کرد که نو کیوانو نوکیوانو شردکین، از پا بی پیشمرگی قروشکی چا در زیو دزو وردبابتم تیکنا چومه نغدا دگل برزانی چومه و حاجی امران لراستی دا پیشمرگی ساده که دیتی بوینده بی هر به بخوین بی زور شرعی زور پالوانانه ان بو دشیان کرد زور باش گرمده حتی بون لپر فرمندر چو که پیشمرگی لهمو جبهکان تفنگدن ینو دست لشر بردن لجیانم دا رو جیوات حالم ندی بو پیشمرگی کوردستان دسته دسته دهاتن بدن جی برز دگریان تفنگیان دشکاندو دچومیان داویشتن توشی هر کونه یک ببونه دیان کشت لوید تالتر نبی پازده سال به آواتی آزادی کوردستان خود لبرانبر گلی داگیر کرن دا راگرتی بی او همو کشت دا بی او هموید لدجمن کشتی بی ایستا بجارک همو آواتی تک روخا بیو بی همی دو سرد بیا باسی عفوا راګان بلم چند روزی حوال هر پیشمرګی چو خو تسلیم کا دسبجه چو چومکوستاني حاجی عمرن لوې با برادر خان موت کاکا ود... تاستا تا خدمت کاری کی کردستان بوم یوشم به دروش مېو خدمت وا، وایستا همشت من دوران دو من د زانم نشای ایران قولو قراری هیا، نمنش منش عفو د کرم ها خو حافظی یک جاریب کمو سری خوام م حل ګرمو بزانم لکوې دم هرچونک اگ بی اگر جان ما به لګندګ دب ما پناهنده درس به مندار یاندلم ملایتیان بودکم خونده شرم کس خبرم نزانی اگر بتوانم خوم بگین مسنوری سوریه د چمو و زور باش دتوانم لناو کردکن خوم حاشاردم دم بلهم به هر حاضر نیم به ایران چونک ده زانم عجم هرچی بلندرو کنو لمرونه به ذلیلی دم کوجن یان دبی خزمتی خدمت ساواک بکم که زورم له مردن پیناخوشترو به هیت زیارگ نایی کم یعنی به زندان و جیر اشخان جدا گیان بدم گردنم اعزا کنو خوا حافیستان بزانین خدا چی قرار دعوه؟ بلام که دوائی بیست ملا مصطفى زوری پی نخوش من بیت موا پی امود آمادم تا دمرم وفادار بم لی ایران بم جنیان حتا ابروم بچه کل کشتن خرابتره بجید نیالم سرم لرگتایو لکوی تو پید دابنی خاککی قبلی منه او تو بیخه برسک فخری پیدکم. هرچن دیموک روش روناگ بو که ایرانی دستر مواناتنو قد در روش نبادم گرنو هیچ نبیل زندان دادام رزینن خوام آماده حت نوی ایران کرد. مام علی عجمم دید فرمیز که برش اسپیکی دا حت خوار. واتم مام علی بود گری واتی خمی تو ما، خجر خمی تو ما منیش دیم با ایران. وتم کاک که, که دیه چی؟ پیر مرده که وقت تو اما لیشت دست نکه. علی بیش باور نکم کاریان بپیره کی وقت تو حبه. با خود لذی نیب می نوا. مم علی لبرم چو. دوشو شعرق لمالی سلیمانی پیش مرگیه. پیدلم بد دع ت. بس هن راننده کمود بن باتشو من. هندک تیم لمن بیانه نم. کس نی دیواره به لترسی پیش مرگی نهمت کر او. حسین کوانی گویی من دادم. لرجل لچنجه پیش مرگ راینگرتین دیان گوی مهاجر. تپیاوی چاګ بو دیز نه بو ایمل دلمن نه ته بو کوجين کی مچومن آراننده اوتی بر سیمه و تن باب چینه لای سلیمانی پېښمرګم نه نه کتبو پیدا کم اگر چون چند پیسه ایر بو مأم علی به عشق دو بوتل عرق وا لو خطر نه ترسابو هاتبو و ریګرتبو بنا و د تقو ګریانی پېښمرګدا حتمه حاجی عمر هر کاروانی مال بون و چن پیاوی ایراني لسرس نور چکوک تیب د دمانچکم دا بمام علی کتبکانشم بجهشت لگل ترومبیل اکی مال برزانی حتما نغدا لم هراو نخوشیه دا لبیر یا نچوبو راژیو کم بدزن لناو فلکه نغدا دا دگرم کوری رش علی کوری پیشوا قاضی محمد دا بزیو یک تری مات کرد علی و تی زور بدا خوام کئی تازه تازه حتن امدیو من لالمان بوم زوری بخیراتن کردمو رو ایشت پشماوی که زور روجک لا کرد هاتلم گویی بمبلاش شیرازی ل رجدا گویی حیف که هاتی سابلق لیه نبم گتم کاکا ل نقد دیت می گتم من کی کشور ل بابی او نزیک بومو اوش آوان دادستی دروا هیس نبید لب بسین ناو خانوی کی من ول سابلق تا فکر تن بوده کریتو تو او پیواتیه شد ل داس اگر استاج پیاد دلمه و بوی هیچ سوم لشکرت نیا، بالام کلیجی توانی او آوکار پیاو نیب حزم دکرد، توش زور پیاو بای. گویی حجر دولت منی کرد دست ملکه غزی. چل میخوی پیا سریمو اتر قدرم نما. وتم کا پیاو بای ندکرای بدست با ملکه غزی. فرمو فرمو باب چین شیر ازید عزیزان و خوشویستان، لیره دابم شویه دینکوتایی بشی 89 و نوی خوند نوی کتبی چشتی مکریانی تا بشکی تر شوتن شد.